سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز کانال هزار افسان در خدمتتون هستیم با قسمت دوم داستان زیبای شاهزاده پربسر و شاهدوخ سلندای. داستان رو تا اونجا شنیدیم که پری درختزار زان تصمیم گرفت که شاهزاده پربهسر و شاهدوخ سلندون رو با هم آشنا کنه اما چون نمیخواست شاهزاده فقط عاشق زیبایی شاهدخت بشه، شاهزاده رو تلسم کرد تا شاهدخت رو کاملا زشت و بدمنظر ببینه. بنابراین هرچه شاهدخت تلاش کرد نتونست نظر شاهزاده رو جلب کنه و همین امر باعث دلازردگی و رنجش زیاد شاهدخت شد. به طوری که تصمیم گرفت قصر رو ترک کنه. بریم با هم ببینیم چه بر سر شاهدخت سلنده این اومد. بعد از مدتی با خستگی زیاد به خونه کوچیک رسید و با گامهای آهسته به سمت اون رفت. هرچی نزدیکتر میشد خونه فقیرانه به نظر می رسید. چشمش به پیرزنی افتاد که در درگاه نشسته بود. اون با ترشویی گفت، اینم یه گدای حسابی که از سنبلی دست به هیچ کاری نمی و فقط ول می گرده. سلندان که چشمان زیباش پر از عشق بود گفت، افسوس بانو سرنوشتی تلخ وادارم میکنه که از تو پناه بخوام اجوزه پیر قرقر کنان گفت نگفتم چه اتفاقی ممکنه پیش بیاد از پناهگاه غذا میگیریم و قضا هم کارمون رو راه میندازه قسم میخورم اگه مطمئن بودم هر روز کسی رو پیدا میکنم که فکرش به ملایمت قلبش باشه اصلا آرزوی زندگی مناسبتایی رو برای خودم نمیکردم من سخت زحمت کشیدم تا این خونه رو ساختم و قضایی برای خوردن فراهم کردم. خیال میکنی حالا باید همه چیزمو به اولین رهگذری بدم که به اینجا میاد و کمک میخواد؟ اصلا شرط میبندم که بانوی زیبایی مثل تو بیشتر از من پول داره. اول باید بگردمه تا خیالم راحت بشه. و بعد به کمک اساش به سمت سرندان خیز برداشت. شادوخ جواب داد. دریغ بانو. ای کاش پولی داشتم اون وقت اون رو با کمال میل به تو میدادم پیرزن گفت اما لباسه قشنگی که پوشیدی نشون میده که اهل زندگی فقیرانه نیستی شادوخ داد زد چی فکر میکنی به اینجا اومدم تا از تو چیزی بخوام پیرزن جواب داد اینو نمیدونم به هر حال به نظر نمیاد که چیزی برام آورده باشی حالا چی میخوای؟ سرپناه بسیار خوب این پول نمیخواد اما بعد غذا میخوای و این یکی رو دیگه شرمندت هستم آه عزیزم غذا بی قضا آدم هایی به سن و سال تو همیشه آماده خوردنم هم. حتما تو هم بعد از این همه پیادروی مثل قهتی زده ها هستی در درمانده جواب داد واقعا اینطور نیست بانو من بیشتر غمگینم تا گرسنه پیرزن با لحنی تمس گفت خب اگه قول بدی همینطور قمگین بمونی میتونی شب رو اینجا بگذرونی. به این ترتیب اون اجازه داد که شاهدخت در کنارش بنشینه. بعد با انگشتاش با ردای ابریشمی اون ور رفت و زمزم کنان گفت بالا تور پایین تور این ردا حتما خیلی میارزه. من باید بهتر از این از تو پذیرایی کنم تا پیش کسایی نری که همه چیزت رو میخوان. حالا بگو ببینم چقدر بابت این لباسای زیبا دادی. شادخ جواب داد، من اونا رو نخریدم و چیزی هم درباره پول نمیدونم. بانوی پیر پرسید، پس تو چی میدونی؟ سلنداین با بلند گفت، هیچ چیز نمیدونم، اما واقعا بسیار غمگینم. و بعد با گریه ادامه داد، اگه بخوای میتونم به تو خدمت کنم که؟ پیرزن با عصبانیت حرفش رو قطع کرد و گفت، خدمت؟ هر کسی باید در ازای خدمت دیگران پول بده؟ اما من پولی ندارم تازه کاری هم ندارم که انجام بدی شاه دختر بیچاره گفت بانو من بابت کارم چیزی نمیگیرم کم کم داشت ناامید میشد اما ادامه داد هر کاری که بخوای انجام میدم فقط میخوام گوشه دنج به آرامش زندگی کنم پیرزن جواب داد میدونم که فقط سعی می کنی منو گول بزنی. اگه برام کار کنی نباید بهتر از من لباس بپوشی اگه تو رو پیش خودم نگه دارم، آیا لباسات رو با لباسای من عوض می کنی؟ بله درسته. دیگه پیر شدم و کسی باید از من مراقبت کنه. شاه شاهدخت بیچاره با درموندگی گفت، تو رو خدا بس کن. بیا لباسا مال تو. پیر زن با سرخوشی لنگ لنگان رفت و بقشه کوچیک آورد که در اون لباسایی پارو و کهنه بود. لباسایی که شاهدخت قبلا هرگز ندیده بود. پیرزن با چابکی دوروبر شاهدخت جست جستوخیز میکرد و بهش کمک کرد تا ردای شکومندش رو در بیاره و لباسهای کهنه رو بپوشه. در همون حال با صدای بلند میگفت خدای بزرگ چه لباسهای باشکوهی پارچش چه عرضی داره؟ با پارچش میتونم چهار دست لباس برای خودم درست کنم. عجب در فکرم که تو یک الف بچه چطور میتونی با پوشتن این لباس سنگین راه بری؟ اصلا با این لباس تو خونم جایی برای این ور اون ور رفتن نداری. اون با گفتن این حرفها ردار رو تا کرد و با دقت زیاد کناری نهاد. بعد رو به سلندان کرد و گفت این لباس من حتما خیلی به تو میاد و جذابتر نشونت میده. مواظبش باش. وقت شام پیرزن وارد خونه شد و بدون اینکه کمک شادخت رو قبول کنه خیلی زود غذاایی مختصر آورد و گفت حالا بیا شام بخوریم. بعد تکه کوچک نان سیاه به دست سلندان داد و در ظرفی رو که در اون دو تا آلووی خشک بود برداشت. پیرزن گفت: اوننا رو بین خودمون قسمت میکنیم و چون تو مهمانی اون رو بردار که هسته داره. اما حواست باشه که اون رو قورت ندی، چون هسته ها رو برای زمستون جمع میکنم. نمیدونی چه آتیش خوبی با اونها روبه را میشه حالا نصیحتم رو که برات هزینه نداره گوش کن و به یاد داشته باش که همیشه خرید میوای هستهدار به دلیلی که گفتم به صرفتره سلنده که غرق افکار غمانگیز خودش بود اصلا چیزی از این توصیه مسخره رو نشنید و یادش رفت سهم قضاش رو بخوره این باعث خوشحالی پیرزن شد و غذا رو برای سابونه خودش کنار گذاشت. بعد گفت. از تو خیلی خوشم میاد اگر همینطور ادامه بدی با هم خوب کنار میایم. من خیلی چیزا به تو یاد میدم که خیلی از مردم نمیدونن مثلا به خونم نگاه کن همه این خونه از هسته گلابی هایی که در طول زندگیم خوردم ساخته شده در حالی که بیشتر مردم هسته گلابی رو دور میریزن ببین چه چیزهایی به خاطر بیحسلگی و بیتوجهی به هدر میره سلنداین اصلا حوصله این حرفها رو نداشت و به این نسیت ها علاقه نشون نمیداد. پیرزن خیلی زود جای خواب رو نشونش داد و اون رو به بستر فرستاد تا هر چی زودتر بخوابه. م نصف شبش داشت باز بشه. اون شب رو بدون اینکه چشم بر هم بگذاره گذرند. صبح پیرزن بهش گفت: «میدونم که اصلا نخوابیدی. حتما بعد از چنین شبی دیگه میلی به صبحانه نداری. پس بهتره تا وقتی که کارهای خونه رو انجام میدم تو رخت بمونی. چون هر کسی بیشتر به کمتر قضا میخوره. امروز باید به شهر برم و از بازار کمی نون برای یک هفتهم بخرم. اون یک ریز حرف میزد و لحظهای به چونش استراحت نمیداد. سلندای بیچاره اصلا اعتناعی به خودش و حرفاش نداشت. اون یک بار دیگه سر به صحرا گذاشت تا به سرنوشت ترخ خودش فکر کنه. اری مهربان درختزارزان که نمیخواست اون از گرسنگی تلف بشه گاوه سفید زیبایی براش فرستاد. اون هم حیون رو با خودش به کلبه کوچیک برد همین که پیرزن گاو رو دید از ذوق و داشت پر در می آورد پیرزن فریاد زد حالا شیر و پنیر و کره هم داریم آه شیر چقدر خوبه افسوس که گرونه اونها سرپناه کوچیکی از شاخه ها برای اون موجود زیبا و آرام درست کردند. گاو همه جا مثل سگی وفادار به دنبال سلنداین به راه میافتاد. اون هم گاو رو هر روز برای چراغ به صحرا میبرد. یک روز صبح موقعی که در کنار جویباری نشسته بود و عمیقا در فکر بود، یک دفعه جوان غریبه‌ای رو دید که به اون نزدیک میشد. خیلی سریع از جا بلند شد تا از اونجا دور بشه. اما اون کی بود؟ بله، شاهزاده پرربسر در یک لحظه اون رو دید با شادی و سرور به سمتش دوید. شاهزاده اون رو شناخته بود، البته نه به عنوان سلندان که بن نمی نمیکرد. بلکه به عنوان شاهدخت زیبایی که مدتی طولانی به دنبالش میگشت. حقیقت این بود که پرگ درختزار زان که فکر می کرد و اندازه کافی اونها رو تنبیه کرده افزون رو از شاهدخت برداشت، و چهره واقعیش رو به شاهزاده پربسر نشون داد این پری بود که شاهزاده رو از تماشای چهره زیبای شاهدخت محروم کرده بود و همین مسئله بی سباتی و دمدمی مزاجی اون رو برملا کرد شاهزاده به پاهای شاهدخت افتاد و تقاضا کرد که بمونه و دستکم با اون حرف بزنه بالاخره شاهدخت فقط به دلیل اصرار زیاد شاهزاده پربسر خواسته اون رو پذیرفت بعد از اون هر روز به امید دیدار دوباره شاهدخت به اونجا می اومد و بهش می گفت که چقدر دوست داره در کنار اون وقت بگذرونه. اما یک روز وقتی از سلندان خواست تا در قلبش جایی برای اون باز کنه اون سر سخن رو باز کرد و گفت که این غیر ممکنه چون قلب اون از کسی دیگه ای پر شده. شاهدخت گفت از وقت بد به شاهزاده دمدمی مزاج، مغرور و خودها دل بستم شاهزاده ای از خودرازی که خودش رو از هر کسی که منو دوست داشته باشه برتر میدونه شاهزاده پربه گفت نباید به چنین موجود حقی رو بی ارزشی علاقه داشته باشی شاهدخت گریهکنان کنان جواب داد افسوس که اونو دوست دارم شاهزاده گفت مگه چشم نداشت که زیبایی‌ت رو ببینه خود من از وقتی که تصویرت رو دیدم تمام جهان رو زیر پا گذاشتم تا پیدات کنم حالا هم میبینم که ده برابر اون که تصور میکردم زیباتری و حاضرم همه چیزم رو در راه عشقت بدم. سلنداین با فریاد گفت تصویر من؟ آیا ممکنه شاهزاده پر در اشتباه باشه؟ اون جواب داد اون به زودی زندگی گذشته خودش رو فراموش میکنه. شاه دختر زیبا. از این نظر به تو اطمینان میدم چون من همون شاهزاده پر هستم. همون لحظه پرهی درختزار زان افسون رو از اون دور کرد و شاهدخت خوشبخت دلارش رو شناخت امتحان اونها به پایان رسیده بود هر دو دگرگون شده بودند و شدیدا به عشق همدیگه احتیاج داشتند دیگه میتونید تصور کنید که چقدر احساس خوشبختی میکردند و چقدر حرف برای گفتن و شنیدن داشتند بالاخره زمان بازگشت به خونه کوچیک فرا رسید همونطور که در کنار هم پیش می رفتن، این برای اولین بار یادش اومد که چه لباسای پارو و ای برتن داره و چه قیافه به ای پیدا کرده. شاهزاده گفت که با اون لباسا خیلی پت و شد و هیکلش گنده شده. وقتی به خونه رسیدن، پیرزن با اخمتخ مزونان استقبال کرد و گفت هر جا که دختری جوان هست، حتما سر و کله پسر جوانی هم پیدا میشه. اما فکر نکنید که نگهیتون میدارم اصلا حرفش هم نزنید از اینجا دور بشید دوستان خوب من شاهزاده پر به سر اونقدر خوشحال بود که از این استقبال اصلا عصبانی نشد فقط از طرف سلندان قاطعانه به پیرزن گفت که باید لباسهای شاهدخت رو پس بده تا هر کس لباسی رو برتن کنه که برا زندگی اونه این تقاضا پیرزن را عصبانی کرد چون خیلی دلش میخواست تا زمانی که زنده است لباسای قشنگ شاهدخت مال خودش باشه در نهایت شاهزاده ناچار شد پولی در ازای لباسا به پیرزن بده مشاهده یک مشتلا تا حدودی آتش درون پیرزن را خاموش کرد پیرزن شاهدخت را به داخل کلبه برد و با قیز و خشم بعضی از لباسای قشنگش رو به اون پست داد تا ظاهری آبرومند پیدا کنه پیرزن گفت که بقیه لباسا گم شدن کم کم احساس گرسنگی کردند. چون با عشق نمیشه زنده موند. همونطور که بدون هوا نمیشه زندگی کرد. صدای گری و زارگ پیرزن بلندتر از دفاع قبل بود. ای وای، سیر کردن شکم آدمای شاد و خوشبخت چه مصیبتیه؟ این کار زندگیم رو ویران میکنه. اما چون شاهزاده ازصبانی به نظر میرسید، اون در حالی که پشت سر هم آه میکشید و پرچانگی و شکایت میکرد، مقداری نان، کاسهی شیر، و شش میوه حسهدار برای اونها آورد که خیلی به دو دل داده چسبید. اونها در حال غذا خوردن چشم در چشم همدگی دوخته بودند و اصلا نمیدونستند که چی میخورند؟ به نظر میرسید میخوان تا ابد با یادآوری خاطرات گذشته زمان را سپری کنند. شاهزاده درباره سرگردانی های خودش در سراسر جهان برای پیدا کردن شاهدخت زیبا سخن ها گفت و یادآوری میکرد که، وقتی زیبا شبیه تصویر پیدا نمی کرد چقدر دلسرد سرد و نامید می شود. شاه دخت فکر بود که اونها که بیشتر اوقات در کنار هم بودند، پس چرا شاهزاده اون رو نمی شناخت و رفتاری سرد و بی تفاوت باش داشت؟ اون گفت خب شاهزاده پر به سر. می بینی که دوستت دارم و عشق همه چیز رو سر و سامون میده؟ اما نمی اینجا بمونیم حالا باید چیکار کنیم؟ شاهزاده پیشنهاد داد که پیش پری درختزار زان برن و از اون بخوان اونها رو یاری و حمایت کنه. در این فکر بودند که یک دفعه دو کالسکی کوچکی که با گل یاسمن و پیچفت از این شده بود در برابرشون ظاهر شد. اونها سوارش شدند و به سرعت و چرخ زنان به سمت قصر علفی رفتند. قبل از اون که خونه کوچیک پیرزن محو بشه فریاد زاری و نالی پیرزن بینوا رو شنیدند. نگاهی به اطراف انداختن و دیدن که گاو زیبا با وجود تلاش پیرزن که ایوان را محکم گرفته بود کم کم ناپدید میشد. بعدها شنیدند که پیرزن قصه داشته با سکه های تلایی که شاهزاده به اون داده بود بقیه عمرش رو سپری میکرد. اما پری به خاطر حرس و آزش اون را مجازات کرده بود. هر سکه که اون از کیسه پولش در می آورد از دستش سر میخورد و بر زمین میافتاد، و اون مجبور بود به سرعت اون رو برداره و دوباره در کیسه بندازه خلاصه که اصلا نتونست از اون سکه ها استفاده کنه پری درختزار زان برای خوشامدگویی با آغوش باز به سمت شاهزاده و شادوخت دوید اون از اینکه تونسته بود اونها رو به هم برسونه خیلی خوشحال بود خیلی زود پری سرایداین هم به اونجا اومد و با خودش پادشاه و ملکه را هم آورد شادوخ از اون تقاضای بخشش کرد و اون هم با مهربانی بسیار از خطاهاش گذشت در واقع شاهدخت اون اونقدر جذاب و زیبا بود که نمیشد تقاضاشو رد کرد اون همچنین جزایر تابستانی رو بهش برگردوند و قول داد همیشه ازش حمایت کنه بعد پری درخت زار زان به پادشاه و ملکه خبر داد که رؤیایشون پادشاه بروین رو از تخت سلطنت پایین کشیدند و چشم ورود پادشاه و خوشامدگویی به اون هستند. اونها بلا فاصله به خاطر شاهزاده پربسر از حکومت کنارگیری کردند و گفتند که هیچ چیز نمیتونه زندگی آرام اونها رو آشفته کنه. پریان هم متعهد شدند که از شاهزاده و شاهدخت در در قلمرو زیبایی نوپاشون مراقبت کنند. روز بعد هم مراسم عروسی برپا شد. اونها سالهای سال با خوشبختی در کنار هم زندگی کردند چون سلنداین دیگه خودبین و پر به سر دیگه دمدمی مزاج نبود امیدوارم از این قصه هم خوشتون اومده باشه روز و روزگار خوش آیا تا به حال آرزو کردین که به سرزمین های سهرامی کنیم، جایی که پریها و